<سو> سوره قمر <سو> <تصفيق> <سو> <سو> <سو> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منتظرهت الساعه و نشق القمض وان يرى ايه ت يحرق ويقول سحر مستمر بنعم الله که بخشا جان دو رحمت است قیامت نزدیک شد و ما از هم شکا جوننچی آغیه ای ببینند از آن روی برمیگردانند و میگویند این جادوی مستمر است آنها هر را تکذیب کردند و از هواهای نفسانیشان پیروی نمودند هر کاری را قرارگاهی است راستی برای آنها اخباری آمد تا از گناه بازشان دارد یک حکمت تمام اما هشدارها سودشان نبخشید تا آن روزی که دعوت کننده الهی آنها را به چیز دشواری بخواند، از آنها روی بگردن دیدگان خود را از خاری فرو اند، آن هنگام که چون ملخها پراکنده از قبرها بیرون میآیند. از ترس به سوی دعوت کننده الهی گردن میکشند و کافران گویند. امروز روز سختی است قوم نو پیش از آنها پیانبرشان را تکثیب کردند آری بنده ما را تکثیب کردند و گفتند او دیوانه است و منزویش کردند نو پروردگارش را دعا کرد و گفت من مغلوب شدم از آنها انتقام بگید سرانجام درهای آسمان را گشودی. و آبی فراوان و پیوسته باری از زمین نیز چشما را جوشاندیم تا آب به اندازه مقدر جمع شود و او را بران کشتی که از تخته و میخ بود سوار کردیم کشتی که زیر نظر ما حرکت می‌کرد این پاداش کسی است که مورد آزار کفر واقع شده است. ما این ماجرا را چون عبرتی برای مردم باقی گذاشتیم. آیا کسی هست که پند تصور کنید عذاب و انذار من چگونه بود. وَلَقَدْ فهل من ما قرآن را برای پند و تذکر سهل و آسان نمودیم آیا کسی هست که پند گیرد؟ قوم عاد پیامبرشان را تقسیب کردند تصور کنید عذاب و انذار من چگونه بود ما باد مرگزایی را در روزی نحس و شون به طور مستمر آنها پرستادیم بادی که مردم را چون نخل از ریشه شکنده شده بر می کنیم عذاب و من چگونه بود و ما قرآن را برای پند و تذکر سهل و آسان کردیم آیا کسی هست که پند گیرد؟ قوم سمود هشدارهای الهی را تکذیب کردند و گفتند اگر از بشری مثل خودمان پیروی کنیم گمراه و دیوانه باشیم آیا از میان همه ما وحی فقط بر این مرد نازل می شود؟ او دروغگوی خودخواه است. فردا خواهند فهمید چه کسی دروگو و, و خودخواه است. ما آن شطر را برای امتحان آنها فرستاده ایم. پس آنها را زیر نظر بگیر و صبر کن و به آنها بگو آب موجود باید بین آنها تقسیم شود یک روز شطر یک روز آنها و هر یک در روز سهمخیش حاضر شود آنها یکی از یاران خود را ندا دادند کردند کردند و اون نیز به سراغ شطر رفت و آن را کشت. تصور کنید عذاب و انظار من چگونه بود ما صیههای مرگبار را بر آنها فرستادیم و همگی چون علفهای خشک ریز ریز شدند ما قرآن را برای پند و تذکر سهل و آسان نمودیم آیا کسی هست که پند گیرد؟ قوم لوت هشدارهای الهی را تکسیب کردند ما بر آنها بادی که ریگها را به حرکت در می آورد فرستادیم جز خاندان لوت که سرگاهان نجاتشان دادیم بقیه را هلاک کردیم <تصفيق> نجات خاندان لوت نعمتی از جانب ما بود اینچونین انسان شکرگزار را پاداش می دهیم لوت آنها را از مجازات ما هشدار داده بود اما آنها اصرار بر مخالفت و شک به هشدارها داشتند آنها از لود خواستند تا مهمانانش را در اختیار آنها بگذارند ما نیز چشمانشان را کور کردیم پس بچشید عذاب و انظار مرا صبحگاهان عذابی پایدار به سراغشان آمد پس بچشید عذاب و انظار مرا ما قرآن را برای پند و تذکر سهل و آسان نمودی، آیا کسی هست که پند گیرد؟ حشدار هشدارها به سراغ فرعونیان آمد آنها تمام آیات ما را تقذیب کردند و ما نیز آنها را چو مقتدری توانا گرفتیم و مجازات کردیم آیا کافران شما بهتر از اینها هستند؟ شایدم اما نامی برای شما در کتب آسمانی است شاید هم میگویند ما جماعتی قدرتمند و پیروزی به زودی جمعشان شکست خورده پا به فرار می گذارند نه قیامت میادگاه آنان است و بیشک عذاب قیامت سنگینتر و تلختر است راستی مجلمان در گمراهی و شعلهای آتشند آن روزی که بر صورت در آتش کشیده می شوند، به آنها گویند بچشید آتش جهنم را بدانید ما هر چیزی را به اندازه خلق کرده ای. فرمان ما یک فرمان است؟ همچون یک چشم هم زدن ما کسانی را که چون شما بودند حقایق را انکار میکردند هلاک کردیم آیا کسی هست که پند گیرد؟ هر عمل کردی که داشتند در کتابها ثبت شده است هر کار کوچک و بزرگی نوشته شده است کسانی که حرمت خداوند را نگاه دارند در باها و کنار نرها هستند در جوی راستین و ارزشمند آن هم نزد فرمانروای مقتدر این دل فی جنات ونهو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر صدق الله العلی العظیم راز خداوند بلند مرتبه بود این کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم